با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و تلویزیون رنگین کمان در بخش هشتم سخنان ما قبل از شروع به یک مطلبی اشاره خواهم کرد که دقیقا در ارتباط با روانشاد کسویه بحث ما بحث کسویه ادامه خواهد داشت و هر مطلبی که در کنارش ببینیم که مربوط به کسرویه بیان خواهم کرد گاهی خسته کننده است ولی چاره نیست باید گفته بشه و در تاریخ باقی بماند اگر خاطرمون باشه چندی پیش بنده در بیان بسلا مطالبی راجب کسروی در پاکستان به یک فاجعه اشاره کردم که عبارت از این بود که یک انسانی به اتهام کفگویی داشته محاکمه می شده و بعد یکی دیگه اونو با گلوله زده و جالبم اینجا بود که هم اهالی همون دادگاه و هم نمایندگان مجلس استقبال کرده بودن از این عمل قاتل در این مدت در این فرصت این آقایان این آدمکشان، این خرافاتیان این بدبختان گناهان بزرگ دیگری هم خودشون بروز دادند یکی دو هفته پیش یک معلم تاریخ جغرافی رو در فرانسه سرش رو بریدند گناهش این بود که در کلاسش درس تاریخ میداد درس سکولاریته میداد درس لایشیته میداد درس آزادی کلام میداد میگفت آقا شما قلمتون بیانتون باید آزاد باشه تا از هر کسی خواستید انتقاد بکنید تقدس در زبان وجود نداره زبان باید آزاد باشه همه باید بتونن حرف بزنن و این مرد رو در خیابان در روز روشن تشکیلاتشون فرستاد یک جوانی رو سر این معلم رو برید این در تاریخ جزو ننگ این گروه باقی خواهد ماند که اینا معلم رو کشتن به خاطر آزادی بیانشون پشت سر آن فکرم هفته بعدش بود که باز یکی دیگر فرست برد در یک کلیس ها مردمی که مشغول دعا در دین خودشون بودن سر چند نفر رو بریدند بعد قبل از اون یا بعد از اون در مقابل, در مقابل ساختمان شال ابدو همین که اکس پیغمبر اسلام رو کشیده بود باز هم به دو نفر حمله کردند مجروح ساختند و بالاخره همین اخیر یک هفته ده روز پیش در کابل وارد دانشگاه میشن امروز شنیدم، 20 نفر گزارش داده بودند. امروز شنیدم سی و تا جوان تحصیل کرده که گناهشون درس خوندن بود کشتند و جالبه اینها با درس من از اول درس کردم مخالفم و آدم روشن فکر مخالفم و آدم که درس میخونه میفهمه مخالفم اینا افرادی رو میخواین که نفع باشه تا بتونن خودشون رو تحمیل کنن مگه ما ما هم مگه خاطرمون میره این مطلبی که آقای خمینی چهار زانو نشستم و فرمودم این دانشگاه فاسده سر فاسدان همین دانشگاهیان است من که خاطرمون رفت و تمام دانشگاهی ها رو اغلبش رو اخراج کردن در اون تاریخ در روزی که این آقای خمینی به قدرت رسید پشت سر این آقا جانشینش آقای خامنهای هم چند سال پیش اعتراض کرد و میخواست دانشگاه رو دانشگردهی که در اون علوم انسانی تدریس میکنند به بنده انتقاد کرد تحملش رو ندارند با این خلاصه عرایزم رو ادامه میدم در بخش هفتم همراه کسروی ما رسیدیم به آنجا که کسروی رو برای ریاست ادلیه زنجان فرستادند و گفتیم پس از آن که اول دی ماه 1301 چون هوا سرد بود ورفم اومده بود ماشینی و سائلی که کسطوی رو برسونه تا زنجان در اختیار نبوده سوار یک گاری پستی میشه و همراهی یک دو تنه دیگه سورا میمونه تا خودشو به زنجان میرسونه ارز کردم که چجوری شد دیگه تکرار نمیکنم به خصوص این رو هم حضورتون ارز کردم که به محص ورود اونجا شخصیتی بود به نام جهانشاخان رشوه به اون داده بود این جهانشاخان کارش رشوه دادن بود اینم هم گفتم همین در زمان محمود میزا احتشام و سلطنه. کتابش اینجاست که در خاطراتش این مطلب رو نمیشته محمود میزا احتشام و سلطنه. در اون تاریخ رئیس مجلس بود رئیس دوره اول دومین رئیس دوره اول مجلس بود گویا یک نفر زنجانی رو این آقای جهانشاه خان ملکش رو خورده بود مید فر بوده بود اون بعد وقت دستش به جایی نمی رسیده میاد در تهران به مجلس شورای ملی شکایت میکنه و این آقا آقای گردن کلو گفت حضورتون که که اینجا اصلا نوشتم در اون موقع یک تخت غالی برزش سه هزار تومان آن روزی به همراهی سه هزار تومان نر به احتشام و سلطنه رشوه داد و این مرد بزرگ این رشوه رو رد کرد با تکرار میکنم متاسفانه یکی از سران فیش روحانی مشروطیت هرچند که خدمات زیادی به مشروطه کرد ولی انسانی بود که لقصش های فرابانی داشت این آقای جهانشاخان رشوه رو به داماد این روحانی داد و بدین طریق از طریق سد عبدالله بهبهانی مشکلش حل شد یا نشد من جایی نخوندم ولی همان رشوه رو به اون داده بود حالا وقتی که که به زنجان میرسه اولین کاری که میشه همین آقای جانشاخان با همون عادت همیشه گیش مقداری براش رشوه فرستاد بیست من روغن بوده اونچه که فرستاده بوده و شش خروار آرد که گفته بود به نام انسانیت و یگانگی من اینو به شما میفرستم که از می نویسه که در اون تاریخ در زنجان یک مرکز یک مؤسسه ی یتیم خانه واز کرده بودن پیغام میفرسته میگه که به خان سلام برسونید بگویید که این وسائل رو که به من فرستادید به درد من نمیخوره لطفاً بفرستا... بفرستید به این سا... مرکز یتیم خانه تا به درد آنها بخوره پس از ورو یکی از کارهای مهمش که همیشه کار مهمش همین بوده مقابله با ملایان گردن کنفت بود دارم میگم ملایان گردن کنفت خب در بین این آدم های خوبی هم بود همین سید محمد تبا تبایی انسان فرهیختهی بود ولی خب اغلبشون متاسفانه چون این هنچه حضورتون از نکنن یکی از علل درگیریش به این ملایان پیاده کردن قانون عرف در زنجان بود ملایان از همون دوره مشروطیت باز در یک بخش دیگری بیان کردم حضورتون از همین دوره مشروطیت اجازه ندادن مشروطه در امور محاکم شرم مداخله کنه باز گفتیم یکی از اهداف مشروطیت قبل از اینکه واجه مشروطیت پیش کشیده بشه عدالتخانه بود و با این هدف هم مشروطیت انجام گرفت ولی باز تکرار کردم همون آقای عبدالله بهبهانی کلاشونو گرفت از همون تاریخ ببرند این محاکم شرعی نه تنها محاکم شرعی مال لایان قدیم رو ادامه داد بلکه محاکم عرفی رو که مشروطیت از دست پادشاه ها نماینده های شاه و ها، والی ها گرفته بود این رو هم صاحب شدن یعنی تمام قضاوت مملکت در دست این ملایان بود و گفتیم که این قضاوت با قانون اسلام انجام می شود. قانون اسلام سخت ترین نوعه مجازات هایی بود که ما همین الان در من می کتمون اینا در این باره می نویسه طبق معمود من به گفته های در بیان عرایزم اشاره میکنم. از همان روزهای نخست ملایان به دست رازی در کارهای عدیه پرداختند کمتر روزی می که پیام یکی از ایشان نرسد هنوز آفتاب در نیامده میدیدم در زده شد و مولایی یا سیدی درآمد و نشست و چنین آغاز کرد حرت و الاسلام فلانی سلام رسانیدند و فرمودند که ارز کنم که فلان کار که در عدلیه هست دعای اطلاع دارم حکم شرعیش فلان است ادامه میدهد میگه من در شگفت می‌شدم که ما چیزی نپرسیده چگونه او پاسخ می‌دهد میگفتن به آقا سلام برسانید و بگویید ما در عدلیه از روی قانون حکم می دهیم و به حکم شرعی آن نیاز نداریم کسوی در جای دیگه در باره همین ملایان داره صحبت میکنه میگه حاشد محمد مجتهد که, که به کربلا رفته بود و بازگشت فردای روز رسیدن کسی را فرستاده پیام داده بود من شنیدم آقای رئیس عدلیه آدم خوبی فلان کس که به اتهام آدم کشتن محبوب شده است قضیه به ثبوت شرعی نرسیده آقای رئیس عدلیه او را آزاد کند میگه من نراحت میشدم کسبی می‌دانیم آدم رو خوب آدمی که از این حرفها همیشه عصبانی میشه مبارزه میکنه میگه پاسخ دادم آقا به آقا سلام برسانید و بگویید خوبی من که ای همین است که گوش به این پیامهانه میدهم و کارهای خودم را دنبال میکنم در این میان یک تنز دیگری در مورد ملایان هم ملایان در حقیقت بیان کردی که از زبیر. باز مراجعه میکنم به قلم خودش در دیداری با یکی از ملایان می نویسد که حاجمیزا مهدی مشهد خواهیم دید این حاجمیزا مهدی مشهد رو با این شخص در آینده هم به شدت حاج حاجمیزا مهدی مشهد روزی به دیدن من آمد روزی هم من به خانه او رفتم ولی از این عمل جز رنجش نتیجه ای به آمد زیرا چون زمستان می و من گالش به پامی داشتم من خاطرم هست سابق بر این در ایران وقتی هوا سرد بود یا هوا گلالود بود زمین مردان بعضی گالش به پامی کردن تا کفششون آلوده نشه وقتی اینا می رسیدن به خونه گالش رو در می با همین کفش می تو خونه و راحت بودن میگه من گالش به پامی داشت خود را نکندن. به آقا برخورد و گله کرده بود که آقای رئیس عدیگه با ظرف پا به خانه ما آمدن ظرف پا گویا در زنجان به کفش میخوین ظرف پا پی من نیز به شوخی پاسخ دادم پس چرا شما با ظرف سر آمدید و ما هیچ ایرادی نگرفتیم یکی از مهمترین مبارزاتی که جسدی با ملایان کرد در زنجان مبارزه با بستنشینی در فرهنگ فارسی متاسفانه بستنشینی و پناهندگی دو واژه‌ای است که در یک معنا به کار می‌رود در صورتی که به کدام بنده دوتا با هم فرق دارن. پناهندگی کسی است که پناهندگی کسی است که از دست ظلم و یا از هر, یه چیزی، هر چیزی پناه میبره به یک جایی به یک کسی به یک منطقهی تا جانشون نجات بده ولی بس نشینی است که شما در اعتراض به یک عملی که انجام شده میگید در یه جای مقدسی میشینید و میگید بس نشستم تا اعتراض کنید به اون مطلب به هر حال اصولا این بسنشینی حتی بعد از انقلاب مشروطیت هم یک ای شده بود به قول معروف برای ملایان یک منبع اعتباری شده بود برای آنها خانهشون خانه امن بود و افتخار میکردن گازیدند به اینکه خانه ما مردم میاد و پناه میاره به ما البته در اون دوره ای که پادشاهان به گمان بنده همه ستمگر بودند یا والیهای مناطق یا بزرگان مملکت طبیعی است که این پناهندگی یک عمل خوبی بود برای کسانی که از دست ستم این آقایان فرار میکردند به یه منطقه خودشونومین داختن تا نجات پیدا کنند ولی همشه اینجوری نبود دزدان و آدم کشان و قاتلان خواهیم دید نیست میرفتن پناه میبردن به یه جایی و در اونجا در امان بودن از دست قانون. تاریخ ما از همون شروعش همیشه با پناهندگی و بسنشینی همراه بود اولین بار در تاریخ بعد از اسلام پیغمبر اسلام این مسئله بسنشینی و پناهندگی را رواج داد در هشتم هجری وقتی شهر مکه به وصله پیغمبر اسلام وی دستوری به این شهر به مردم آن شهر داد هر که شمشیر خود را در نیام کند در امان است و هر که به مسجد در آید در امان است و هر که به خانه ابو شفیان در آید در امان است خواه بعد از اونم در جای جای تاریخ ما همیشه این بسنشینی و پناهندگی بوده ببیشه در دوره صفحویه خیلی خیلی بیشتر بود در این دوره شهر اردبیل مقبره شیخ صفی که یکی که جد بزرگ پادشاهان صفحویه بوده مرکز پناهندگی بود زنجیری میکشیدن از بالا به پایین هر کسی دستش به اون زنجیر میرسید در پناه بود حتی قاتل هم بود خود پادشاهان هم حق نداشتن این آدم رو بگیرن بیارن بیرون حضورتون از که پناهندگی در حتی در دربار پادشاهان در داخل آخشون هم باز رواج داشت کسی که به اونجا پناه میوبرد حتی خود پادشاه هم نمیتونست در دو از دولت خانهش این رو بکشه و بیار بیرون در دوره قاجار هم اون که خیلی مهمه سه اراده توپ را که در دوره جاهباز از پرتخالی ها به غنیمت گرفته بودند و به نام توپ مربارید معروف بود مکان بست و پناه قرار داده بودند که مردمی که فرار میکردن از دست ظلم به اونجاها خب خارج از آن در دوره قاجار و در دوره سرفویه ببیشه در دوره قاجار خانه علماء خانه پناه بود خانه بس بود ولی رزاشاهی اومده به قدرت سیده رزاشاه میخواد دقیق قبل یکی از های گذشته گفتم رزاشاه میخواد عدلیه رو اصلاح بکنه برای اصلاح عدلی باید از این نوع مسائل خودداری کرد فقط قاضی است که در اونجا تصمیم بگیره اونم نه قاضی شرع قاضی عرف قاضی که تحصیل کرده است قاضی که بر اساس قانون انصاف داره قضاوت میکنه کشویی می نویسه که فرزند یکی از توانگران شبی در بزم بادخوری زن بدکاره ای را شرکت داده بود یکی از مدعوبین به نام حاجی احمد بدمستی کرده و آن زن را با غلوله کشته و جسدش را برده بود در بیابان انداخته بود گرک خورده بودند و چند از موهاش و باقی بود ندامه میده که شهرمانی رفته بود این مسئله دیگه بود جسد را برده. ولی در این میان قبل از اینکه این ببخشید. این حاج احمد رو بگیرند فرار کرده میره خانه یکی از ها هاشخ مهدی پناهنده میشه. کسیم تازه از رسیده و منتظره که این قاتل رو بیاره در ادله محاکمش بکنه. میگه خبری نشد. میبینم خبری نشد. و میکنن میکنم به حرف خودش. این پس از چندی من شنیدم او را به حال خود گزارده به گرفتنش نرفتند. از وکیل عمومی پرسیدم گفت آری به گرفتنش نرفتم. گفتم چرا؟ گفت رسم بر این است کسی که در خانه علما و نشست دیگر او را تعقید نمی کنند. بر فرض آن که اگر به شهربانی یا حکومت بنویسم اقدام نخواهم کرد. می نویسه گفتم در برابر قانون اینها ها چه است؟ شما به حکمران بنویسید و بگذارید آنها گوش ندهند. می نویسد با فشار من نامه به حکمران نوشته شد حکمران پیام فرستاده بود صلاح نیست من به احترام عدلیه خواهش میکنم که آقای حاجمیزا مهدی او را فرار دهد ببینید در کجا ما داشتیم زندگی می کردیم. کجای دنیا بامو داشتیم زندگی می آدم کشته فرار کرده رفته در خانه یکی پناهنده شده که اون یکی هم صاحب جرمه که یک قاتل رو پناه داده حالا والی منطقه جرأت نمیکنه اونو از این خونه بکشه بیرون به رئیس حدیلیه میگه که اجازه بدید ما اینو فراری بدیم فردا بباشده پیام می‌فرستند. من امثال این قانون که در دست ماست ما نتیجه جانبازی هزارها مردان غیرتمند است. در همین زنجان شما از این زاده و میزا و دیگران با صد مرد تکرار میکنم در همین زنجان شما از این زاده و میزا علی اکبر و دیگران با صد مردانگی جان باختند و در نتیجه همه آنها شده این قانون این عظیمزاده و علی اکبر تاریخ مفصلی داره متاسفانه من اگه بخوام بگم خیلی طولانی نمیشه فقط اشاره میکنم که زمانی که طبای مجاهد برای فتح تهران بر علیه محمد علی نزا محمد علی شاه میرفتند یفتی میخوان این دوتن را دوتن جوان رو فرستاد تا برود در زنجان آرامش برقرار بکنه. یک زنجان ملا باقر زنجانی شلوغ کرده بود. از استعداد حمایت میکرد. از محمد علی شاه حمایت میکرد. این دو تن از راه میرسند. با گروه کمی میخوان در اونجا آرامش بکنند. ولی این ملا مردمو، اون اون مردمی که همیشه پشترشون هستن اون مردمی که به اینا اعتبار میده ببخشید اون مردم رو میفرستن و اینا رو از دست حاکم شهر میگیرن و میکشن بنابراین کسگی استنادش به این مسئله هست میگه که در همین زنجان شما عظیمزاده و نیزو علی اکبر و دیگران با صد مردانگی جان باختم و در نتیجه همه ای آنها این قانون شده است. من ناچارم این قانون رو روانگرد حاجی احمد که آدم کشته و در خانه شماست به مشتهد مینویسه به دستور قانون باید دستگیر گردد و به دادگاه فرستاده شود. از آنسو در اسلام تنها کعبه پناهگاه توانستی بود من نمیدونم از کی خانه شما کعبه گردیده و هر حال من ناچارم حاجی احمد را به دست آورم یا خودتان بفرستید یا می فرستم می کشند و می آورند می نویسه همان روز حاجی احمد به عدلی فرستاده شد و از آنجا مستقیما به زندان سپرده کردید این داستان به یک باره که می, می این داستان به یک باره چشم ملایان را ترسانید و نیروی عدلی را به همه نشان داد بنده این بخش را هم در این در مرحله به پایان میرسونم تا به بخش نهم برسیم ببینیم کسوی در زنجان چه کارهایی کرد ادامه کارش رو بررسی میکنیم روزتان بخیر